کتاب ها و افسانه های ایوارشاه نویسنده لوریس چکناوریان ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده اله اصلانی سلام و عرض عدب. به شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان امیدوارم حال دلتون کوک لبتون خندون باشه داستانی که این بار میخوام براتون بخونم از کتاب قصه ها و افثان های به اسم پروانه و شاهزاده هستش امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید روزی روزگاری شهزدهی برای جمعوری پروانه های رنگی بزرگ و زیبا در باقی قصر قدم می‌زد. شاهزاده پروانه‌ها را با تور پروانه گیرین می و خشکشون می‌کرد، و در قاب های زیبا می‌گذاشت و قاب را به دیوار می‌زد. روزی از روزها که شاهزاده در پی گرفتن پروانه‌های رنگارنگ بود ناگهان دختر زیبایی را دید که وارد دریاچه شد شاهزاده که حیرت کرده بود نمیدونست این دختر کیه و از کجا اومده از اهالی قصر که نبود پس چه وارد قصر شد و با چه جرأتی و با اجازه چه کسی توی دریاچه قصر شنا کرد؟ شاهزاده غرق توی همین افکار و سوالا بود که دختر زیبا از آب بیرون اومد و ناگهان تبدیل به پروانه شد و پرید و رفت که رفت شاهزاده دوید به دنبال پروانه ولی اثری از پروانه نیافت که نیافت انگار که پروانه دود شده بود و رفته بود به هوا شاهزاده گیج و گنگ در فکر فرو رفت خواب بود آیا؟ یا واقعیت شاهزاده برگشت به قصر و ریش سفیدهای قصر رو خواست و چیزی را که دیده بود تعریف کرد همه در فکر فرو رفتن بعد از مشورتهای طولانی به شاهزاده جواب دادن اون چیزی که شاهزاده عزیز ما دیده، شاهزاده خانمیه بسیار زیبا از خانواده سلطنتی کشور همسایه ما. تا کنون پادشاهان و شاهزادههای بسیاری به خواستگاری اون اومدن ولی شاهزاده خانم همه را رد کرده چون تو رو دوست داره. شاهزاده خانم به جادوگر قصرش دستور داده که اونو تبدیل به پروانه کنه تا روزی شاهزاده عاشقش بشه شاید این پروانه که شاهزاده عزیز ما دیده همون شاهزاده خانم باشه و این شد که شاهزاده شب و روز در دشت و جنگل و توی حیات قصر به دنبال پروانه ها بود ساعت لب دریاچه می و به انتظار بازگشت دختر زیبا پروانه ها رو می و آزادشون می‌کرد. او دنبال اون نقش بیمانند و رنگ های زیبای روی بال پروانه ها بود در این میان پروانی شاهزاده رو می دید ولی در انتظار بود که عشق او از اینکه هست بسیار بیشتر بشه شاهزاده از فشار غم و اندوه فراوان بیمار شد و پزشکای نمی نمیتونستن درمانش کنن همه ناامید شده بودن شاهزاده به سختی نفس میکشید و کم کم به خواب رفت همگی نگران و اندوهگین گرد بستر او زانو زدند و دعا می‌خوندند. شاهزاده توی خواب پروانه رو دید که گفت بیا به دریاچه، بیا، بیا، بیا به دریاچه. ناگهان شاهزاده از خواب پرید و تورش رو برداشت و دوید به سوی دریاچه. شاهزاده رسید به دریاچه و دید که دختر زیبایی توی آب شنا میکنه پنهون شد تا زمانی که دختر تبدیل به پروانه میشه و اونو به دام بندازه شاهزاده خانم از دریاچه بیرون اومد و همین که تبدیل به پروانه شد شاهزاده تور رو انداخت و پروانه رو گرفت و به قصر برد وقتی از تور آزادش کرد پروانه تبدیل به شاهزاده خانم زیبایی شد و گفت من دختر پادشاه کشور همسایه هستم از جوانی عاشق تو بودم، پادشاهان و شاهزادههای زیادی منو میخواستن، ولی چون تو رو دوست داشتم، ازدواج نکردم. دیدم تو پروانه جمع میکنی، از جادوگر قصر خواستم که منو تبدیل به پروانه کنه تا روزی که تو عاشق من بشی. مدت هست که بیس منتظر این دیدار بودم، وقتی یقین کردم که تو هم منو دوست داری اومدم به خوابت تا بعد از این همیشه با هم باشیم. اگه تو هم بخوای میتونی پروانه بشی تا هر دو در آزادی کامل بتونیم عشق خودمون رو زنده نگه داریم. شاهزاده! از شادی گریه کرد و گفت من تو رو میپرستم تو تنها عشق من هستی من از تو جدا نمیشم منم میخوام پروانه بشم تا با تو در آزادی کامل باشم شاهزاده و شاهزاده خانم تبدیل به پروانه شدند و پریدند و رفتند به دنیای عشق کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی